جلسه سی و چارم قوائد فقه سیاسه بحث تکمله اهم و مهم الگوی جنب ساد یوسفی یکی دوازده ازار و چار سد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علا سیدنا و نبینا ابل محمد و علا اهلویت تاهرین المعصون سیم و بقیت الله فل... فقیت الله فی الارضین روحی و عربا و العالمین لفده اگر دوستان موافق باشید من بحث رو با اینکه دو دقیقه سارت اگر دوستان نکاتی رو شفایی بفرماین مطمئن فرستدن اما شفایی هم استفاده میکنیم تا ادامه بحث آقای دوستان فرمودن که آقای بحث به نظر شما فلسفی و حقایق محضر نشد خب ما به اندازه ضروری میخواستیم بگیم که چرا اتفاقاً باید با نگاه فلسفی نگاه کرد تا حل مسئله کنیم اون بحث علت و محلول رو عمدن ما فلسفی مطرح کردیم که بگیم آقا این تظاهام رو مطرح نکنیم با نگاه فلسفی گفتیم تا بگیم آقا اون فرمایش که تزبزوبی در بیانشان بود که گفتن تظاهام هست یا نیست بگیم آقا جای تظاهام نیست رضاهای رضایی هم فرمودن که ما در فقه مگه علت و اینجا خواستیم استفاده نفیی بکنیم و بگیم که این تضاحم اینجا منتفی در بعضی از شقوقش بعد فرمودن که آی لنگری که شان اهداف رو به نظر به حکم در نظر نگرفتند ناظر به حقایق خارجی محض گرفتند این دو نکته است کنم شبیه این نقد رو تو با در فضای مقاصد معمولا را این مشکل وجود داره در بحثی هم که سال گذشته من خدمت دوستان داشتم این نقل رو داشتم این آقایی که مقاصد رو مطرح میکنن حالا آقای یوسفی به صورت رسم، رسمی نگفتن من می‌خوام بحث مقاصد رو مطرح کنم یه جای ادبیاتشون شبیه منابعی هم که استفاده کردن یکی دو تا منبع است ولی اون رو گرفتن یا باید تغییری یا اینکه بگیم چون در ادبیات فقه یک ادبیات عام راگه بست اغلاهی اغلی اغلاهیه در انحصار اونها نیست خب ایشان آوردن بحث احکام اهداف رو آوردن ولی طبیعتاً این فضای مقاصد یه جایی میگن مقاصد یه جایی میگن اهداف اون مقاصد عملا تبدیل میشه به بحث علت کاوی اما وقتی که میان مصادق میگن میرن سراغ ا مصادیق مختلف احکام یعنی یه بار خود حکم رو میگن یه بار علتش رو میگن یه بار مقصد رو میگن قاطیاتیه لذا حالا سبغی بحثشان درست ممکن به تبیر آقای لنگری رو حقایق خارجی محض رفته ولی به عنوان که میشه گردن ایشان بذاریم بگیم آقا تأمین ادالت، تأمین امنیت، حفظ امنیت اینا واجبه و به عنوان حکم در نظر گرفتن حالا اون بحث حقیقت محضه یا اعتباری بودن خلاصه اعتباری یا محضه بودن یا غیر محض بودن به نظر توی این قسمت باید تحلیل میشه فرمودن سطح کفاف چی باشه حالا و فرمودن که ناظر فرهنگ ها متفاوته بله الان ما با اون کار نداریم ما دو خب طبیعتا ما یه چیزایی میگیم کافیه یه چیزایی دیگه دیگران میگن خب اون مسطقه شما الان کار نداریم لذا گفتیم اینا شاخصه میخوا، نصاب میخوا. بعد از منظر شرعی از منظر غرفی اینا تفاوت داره یا نه؟ خب اینا رو میتونیم لحاظ کنیم به قول شما مؤلفات زیادیام درش تاثیر داره. الان من اینها رو که ارز کردم یه مقدار مقدمه بود برای اون الگوی رف تزامن. بازم فرمودن که عدالت ضروری و کفاف و کشایش موقع سخته. دیگه برای خود من که دقیقاً تویشان تو فضای اقتصادی بحث میکنن ولی الگوشون عامه طبیعتاً همینطور مثلا عدالت این نوع بحثی بود که خدمت جناب استاد رشاد ما داشتیم در مسئله شناسی فقه در مسئله شناسی فقه الولایم بعضی موارد من ازگرم اوناهایی که قابل در واقع رتب بندیه بیایم مثلا مسئله سازی ثومی هم داشته باشیم نگیم این هست یا اون کافیه بلکه اگر گفتیم کافیه بگیم چه سطحیم خب. اما برخی از امور که می قداری سطبندیش سخته اگر مثلا عدالت رو ما در یک نفر در نظر بگیریم بگیم آقا حق به حق. در واقع بندی ادالت در واقع ابهام داره چرا؟ ممکنه اینجوری بگیم ممکنه گفته بشه که آقا یا عدالت یا ادالت, ادالت نسبت به فرد خاص تحقق پیدا کرد یا تحقق پیدا نکرده است آیا حد وسطی داریم سطح ضروری و غیر ضروری مگه داره همش ببینجه که چیه ممکنه بگیم که در واقع همه مسادیق ادالت ضرورت دارند و در نتیجه اصلا سطح کفاف و گوشایش در این مورد معناست. خب شبیه اینو من از عالم دیگه ارز کنم که مواعث اینطوری دقیق جای تر داره من تشکر میکنم از دوستان که فرمیدن منم خودم همین رو در نظر داشتم و به نظرم جای تحمل داره دوستان اینطور موارد رو نبخل. در نظر داشته باشیم خوبه مثلا بحث نظریه عدالت در نظریه عدالت که بر اساس علم ای است از از افلاتون افلاطون شروع شده آمده به فضای فرهنگ اسلامی رسیده گفتن چند تا قوه داریم سه یا چهار تا یه الگوی یکی افلاطون سه تای می‌گیره چهاررومی رو یه جور دیگه انتظار از میگیره. می‌گیره علسو چهار تا میکنه حالا بگیم این چهار تا یا سه قوه هر کدام سه دارن او افراد و تفرید و اعتدال اگر در اعتدال باشه یه فضیلتی اگر در افراد و تفرید باشه دوتا رزیلت مجموعی رضایل و فضیلت هم زیر مجموعی اجناس فضایل قرار میگیرن من خیلی سال پیش نظره اعتدار کار کردم در هنده کتاب که منتشر نشده بعضی نقدها ها رو هم جمعی کردم مثلا بعضی آقا نفتیم آقا هر هرچقدر بیشتر باشه خوبه این دیگه کجا اعتدار داره کجا افراد داره تفرید داره اینجا هم همینطور ممکنه ادالت چون بگیم آقا همش ضروریه همش خوبه مگر اینکه خلاصه یه جوری دیگه بحث بکنیم مثلا با جنبه های در واقع میزان فراگیری مثلا ادالت یا دیگر شاخص ها چه بسا ممکنه ترخ بشه ممکنه است که خلاصه احتمال بندی اون با لحاظ های جنبی با لحاظ امور جنبی خلاصه یا سانبی بگیم لحاظ بشه ترخ بشه اما باید خلاصه شفافیت پیدا کنه هر کدامش باید شفافیت پیدا کنه نمیشه همچون کلی بگیم از اونها بگیم ایه موردش سربدی داره یکیش نداره خب پس اگه این طور باشه یه بخش از اون بحث تضاهمی که میخواییم بگیم منتفیه شبیه این نکتر رو باید حالا دماغ روشت میشه بگیم برخی از امور مثل روشت جای ارتباط داره در واقع مانند عدالت یا روشت بباشید امنیت امنیت میتوان میگیم امنیت کم یا امنیت زیاد میتوانن صد بندی داشته باشند البته اگر شاید اون فقر بگیریم نابرخورداری بگیم میشونم بگیم بگیم عدم عدالت عدالت اما اون سطح ضروری و سطح مثلا چیزی که به اگه خیلی هم توصی پیدا کنه در عمر مالی به اسراف برسه اما در امور بنس دیگه چی ما اون سطح های مالی رو در واقع می توانیم بیش از در واقع رفاه بیش از اندازه می توانیم به سطح اسراف برسیم چی تو این موارد بعضیش ممکنه قابل تطبیق نباشه. حالا پس این این های مورد داشته باشیم. یکی از دوستان فرمودن، ای کج اصل مسئله رو ما نفهمیدیم. اصل مسئله یادآوری می‌کنیم. آیا برایمی فرمودن که اصل مسئله روشن نشده؟ آرام آرام به اون ریل اصلی بر و اون چی؟ اینو مقدمات بحثه مقدمات بحثیم که آم ما یه اهداف هدف قوی داریم در هر کدوم از این نظامها. یه اهداف میانی داریم و اهداف مقدمی ایشان آقا اگه تضامن شد چه کار کنیم خب قبلش ترک کردیم که تضامن به ارزی خواهد یه مودلش ارزیه دوتا هدف همسط یه ولگوی هدف در واقع سطح بالا پایین داشتیم خب این یه مورد مورد بعدی این بود که بین دو تا نظام ما تضامن داشته باشیم خب این تضامن بینی چیه؟ مثلا در میان اهداف اقتصادی که سه, سه سطح رو ببخشید سه مورد رو فرمودن ما میخواییم تضامن ایجاد بکنیم فرض های تضامن اینا مقدمه بود برای تضامنه بین اهداف متوسط اقتصادی اشان میگن آقا در واقع بین اهداف متوسط در هر نظامی میتوان مسادقی از تضامن پیدا کرد چگونه اینکه هدف رشد اقتصادی با هدف امنیت با هدف تأمین ادالت که در ارز همان تضامن پیدا بشه بین اهداف متوسط در هر یک از نظام های اینی میتوان تضامن پیدا کرد خب اینجا چه کار کنیم؟ اگه تضامن حاصل شد در این صورت باید سطح اینا رو با هم مقایسه کرد باید با مقایسه سطح هر کدام از طرف به شناسایی موردی پرداخت که قابل تقدیم بر دیگریست به تا نمونه اگر مثلا هدف تأمین ادالت اقتصادی با هدف تأمین امنیت اقتصادی تزامون پیدا بشه پیدا بکنه باید برعزاد در واقع موردی رو بر دیگری مقدم کرد و رفع و, و از این طریق رفع تظم کرد که رتبش بالاتر رتبه کدام بالاتر بدون صورت در واقع هدف ضروری داریم بشید امنیت ضروری امنیت کفاف امنیت گشایش، این یه،, یه ستون از اون از ستون دو بام عدالت ضروری عدالت کفاف عدالت گشایش حالا اگر تصویرش اصلا ستااقند درست باشه خدمش رو اورز کنم این. نی عرض کردم که دوستان فرموده بودن یک کمی روی کرد فلسفی پیدا شد چون که میخواستیم از اون با اون تحلیل علمی معلولی بگیم که اینجا جای تضاحم هست یا نیست گفتیم که آقا این دوتا با هم تحقق پیدا می‌کنن تضاحم نیست فرمایش های لنگری و آقای رضایی که فرمودن در فقه مگه علت معلول داریم و بس فلسفی شده دوباره نکات دیگه فرمودن آقای لنگری فرمودن که سنخ اهداف و حکم اینجا سنخ اهداف است. بحث حکم رو در نظر نگرفتن و حقای خارجی از عرض کردیم که جناب وسط یوسفی این دوتا رو قابل تطبیق می دانند. درسته بحثی حقایق خارجی رو در نظر می اما چون که تأمین ادالت تأمین امنیت تأمین رشد رو واجب شرعی می دانن طبیعتا این دوتا با قابل تطبیقه و در فضایت مقاسه درس کردیم اونم یه مشکل اینجوری داریم یک بار از مقاصد عرف میزنم یک بار از علال عرف میزنم یک بار از مساله یک بار از خود و حکم وقتی مقاصد رو میگن تو تطبیقات احکام رو میارن به مستند این دوتا رو با هم میگن ولی یه بلبشوی هست اما اینجا طبیعتا در نوستاد موسفی اینا رو نتیجه حکم شهری هم میگیرن اینا رو واجب می‌گیرن. یه نکته هم که بیشتر فرمودن سطح کفاف در فرهنگ ها متفاوته خوب اون بحث نستاخشنسی با اون کار نداریم فرمایش درستیه لذا عرض کردیم که نصاب و در واقع شاخص میخوایم از بحث ما فیلن خارجه بعد خدمت رو کنم بحث ادالت ضروری و کفا و گشایش رو این رو هم اشاره کردم به خدمت آقای لنگری ارز میکنم دوباره که برداشت خود منم این هست که مفهوم ادالت شاید بگیم یا ادالت هست یا نیست اگر موردی موردی بخوایم به یه لحاظ هایی ممکنه بگیم که اگر نسبت به فرد خاص انجام میگیر یا تحقیق پیدا کرده یا نکرده همه مصادیق ادالت رو ممکنه میگیم مخواد ضرورت دارن اصلا سطح کفایف گشایش چه بس بگیم که بیمهنا باشن لذا این رو من همسویی رو دارم با دوستان لذا اگرم بخوایم بگیم احتمال سطف بندی اون باشه با شاخص ها و امور جنبی و ثانوی چه واسطه ره کنیم فرمودن آقای ابراهیمی که اصل بس روشن نشد اصل بحث ما این بود که ما مقدماتی گفتیم برای الگو رفع تظاهن و اون دو سه تا مقدمه داشت فرمایش مذبور این که امروز سر مقدمه گفتیم جلس قبلا رضی قسمت هاش اهداف رو به مساله یکسان گرفتن بعد آمدن گفتن که ببینجه اون قسمت اهداف هم عرض تظاهن داره یا از این نظام با اون نظام دیگه در سطور مختلف تظام پیدا می کنن قسمت اصلی فرماششون اینجاست که می بگم بگن هر کدام از این اد... اداخ صد سطوری داره بعد اون سطور رو با هم باید مقایسه کنیم خب حالا لذا اگر مثلا تو این بحث ادالت همه اگر همه مصادیق عدالت ضروری باشن در واقع می توانند در خلاصه بلگوی رفع تظاقوم این نکته در واقع این ویژگی رو لحاظ کنیم می توان در واقع این رو مد نظر قرار داد اما نکته اساسی رفع رفت تظامشان چیه؟ اینکه میگن سطوح مختلف رو ملاحظه کنید. و بیاید و از اون نتیجه بگیرید خب اون به چه صورت فرض های تضاهم متفاوته در واقع یه جاهای تضاهم امور, امور ام چند قسم میشه تضاهم دو امر یا بگیم مجموع عمامر امور ضروری با یک دیگه خب این یک فرض یه مورد دیگه تضاهم امور ضروری با امور کفاف یا گشایش امور در سطح گشایش یکی بگیم تضاهم امور گشایش با یکی دیگه درسته مورد بعدی تضاهم امور, امور گوشایش با قبلش ببخشید تضاهم امور کفاف امور سطح کفاف با یکدیگر مورد بعدی تضاهم امور سطح کفاف با سطح گوشایش تضاهم امور گوشایش با یکدیگه بعدیم دیگه مستاق نداره یا بگیم تضاهم امور گشایشی با امور غیر ضروری خب این دیگه اصلا, اصلا تضاهم نیست بله اون قسمت رو خلاصه جناب آقای لنگلی اون قسمت که نبودم سری خلاصهش رو عرض کردم نکته اساسی در این قسمته که قلگوی تضاهم رو ما چجوری تصویر کنیم پس الان چند مورد شد خب تضامه امور ضروری با یک دیگر نیازمند بررسی مستقلی است که آقای یوسفی اینو بررسی نکردند. باید طبیعتاً بگیم طبیعتاً امور ضروریتر مقدم باید بشن درسته؟ اما امور ضروریتر باید مقدم شوند این رو دیگه اشان نپرداخته دسته دوم تضاهم امور ضروری با امور مربوط به بلا سه امور سطح گشایش و کفاف این کدام مقدمه در این صورت امور ضروری بر امور سطح کفاف و گشایش مقدم میشه درسته قبولی دیگه این روشنه چون تقدم روتبی دارن برطبه سوم در تضاهم امور سطح کفا کفاف با یکی دیگه چی؟ اینجا دیگه هیچی نگفتن طبیعتا یه آیتمی دیگه می‌خوام. یا بعد بگیم در صورتی که اینها در صورتی که امور ضروری همصد باشن در واقع باید حکمه به تخییر کرد اگر امور ضروری با امور سطح کفاف و گشایش تضامن پیدا کنن امور ضروری مقدم میشه چونان اگر امور کفاف یا گشایشی اگر در واقع از سنخ امور واجب حلقی نشوند اصلا طبق ادبیات فقهی اصلا مفهوم تزامون در آقه انقدر ضرورتش ضرورت تقدم در تقدیم امور ضروری روشن که که حتی مفهوم تزامون در این موارد بیکار نمیره. صدرا شیرازی بفرمایید. چون همین روابطی به نظر و کفایتول قشایش و نه به تیعن قرار نیستش. یعنی چی؟ برای ضرورت در اون بحث به شیء قرار میگیره، بحث تفاوض بر قشایش درسته. درسته. آوزی وجود نداره دیگه. وقتی امور ترسی میشه، دیگه نمیگیره ذاتی وجودی. این بشه، خوب دراتم حاصل شده. نه، ببینید الان مثلا فرض بگیریم تو بحث فقر، بعداًشون تزاهمی که میگن دوستانم که فرمودند که آقا در امور سیاسی بیکار به حال اینجا شفافش کنی در امور سیاسی هم بیکار مثلا میگیم که آقا در یه شهری الان مردم گرسنگی دارن میمیرن توی یه شهر میگه آقا بیا برای ما خیابان بکش خیابان کشیدن جزء امور رفاهیاته یا کفافه حالا یه سطح کفافه یه سطح هم خیلی دیگه در سطح گشایشه بیگه آقا بیا خیابان ما خوبه بد نیست ولی بیا آقا ده میلیارد حزینه بکن این رو وسیع بکن ما اینجا به جایی که مثلا این مسیر رو بیستقیقی بریم یکمی خلوتتر بشه یه رو ببریم آیا این سطح الان سطح چیه؟ این الان گوشایشه میگه این خب قصدی گوشایشه دیگه ولی تو اون یکی شهر مردم دارن و بر فرق بروقتی میمیرن اون قصد ضروریه شما به این ستا موردی یعنی نمیرن تو همه تخصیبندی که فهمیدی تنزهای تنزهای متفاوت هست این ها ناکوید رو داره اوتواندی میتونید راسته روتین این مقدار ببین من علاوت این قسمت اخیر الان ارازه خودمه یکمی یک با فرماشه آقایی دارم مخلوطش میکنم که هم یه جور ابهاماش شفاف‌تر بشه هم بیانش شفاف‌تر بشه ما از اگر از باب نزولین اخری تو بحث نزول این بحث رو نکویم یعنی چه موضوع می‌شود او نزول بوسه دوست یانچی. اون مسئله که چرا کارا تو سیستم سرور شده این درسته. بعد وقتی گوشاله شو انجام بودیم بله که فایده لزومی شده ای مزید مزید زمارد زمارد. شما فکر می‌کنم شما, میکنم شما تو خودمون به می‌برید میگید که اگر بندی درسته ولی ما میخوایم مقایسه دو امر بکنیم ببین اون فرمای شما رو من اینجوری میفهمم که اگر ما مثلا تو یه خیابان رو عریض بگیریم خب خی یه ماشین رد میشه دیگه ما میخواییم تا ماشین رد چویه یه ماشین رد میشه این که خارج از بحث ماست فرمایش روشنیه این که میفرمایید توش هست این درسته به این محنو اگه من درست فهمیده باشم ولی ما الان میخواییم دوتا رو مقایسه کنیم میشونیم الان تضاهمه دیگه میگه آقا ما ده ملیون پول بیشتر نداریم صدا رو دارید چون بعضی موقع احتمالاً صفحه بره هر موقع دیدی صدا نیست حداقل تو یاد داش دوستان یه پیامی بذارن چون پیام دوستان فرمودن آقا استاد یه هر نهار حق دارن بخورن دیگه ما نه فرجت اعتماد تاخیرم کردم ترم به جای 4 5 همون از نشد برگشتم اعتماد بعض ما صف میشه خدمتش ما تا س... یه مدتی صدا نمی پیام بده که شاید بهتر متوجه بشن خدمتش شما از کنم معلومه میخوام دو عمرو مقایسه کنیم یه پول بیشتر ده میلیارد میگیم این ده میلیارد رو دو تداوم بنه چیه بر رفع نیاز ضروری فقر الان مردم دف... به فلاکت افتادن این شهر بالا شهری ها میگن آها اشکال نداره حالا یک در... مثلا یک تمام بده به اونا یک ده در... نه تمام بشه بیاره به ما نه نصف نصف اونا 50 هزار نفر هم. ما هم 50 هزار نفر شما نصف بده به اونا حالا میخوان هرچقدر میخوان بخورن این منطق داره میگه نه آقا شما این ده ملیارده ببر اول اون نیاز ضروری اونا که اگر گلستنگی دارن میمیرن اون رفت کن فعلا نمیخواد ببر برای بالا شهر یا خیابانشان رو وسیعی کنیم در سطح گوشایش یا در سطح کفا اول این ضروریات رو پر کن مثل یک لیوان آبی که دست شماست یه جایی مجرور سک چالجوله است شما آب رو که میریزی اول میره اون صد پایینی رو پر میکنه آرام آرام میو بالا همه متوازن شد اون موقعیب نداره گوشایش و اینا و کفاف و اینا رو نوبت بعدیه الان میگه پس فرمایششان در واقع من فرص ها رو تحقیق می‌کنم، شش فرض کردم. با این شش فرض یکی دو تا خلم اینجا پیدا میشه. یکی میگه تضاهم بین امور ضروری با یک دیگه. حالا چه در یک نظام همین بعدا در امور غیر نظامم به کار می‌برند. بعد تضاهم امور ضروری با امور سطح کفاف یا کشایش مورد سوم تضاهم امور سطح کفاف با یک دیگه خب اینجا اگه در واقع پس اون نکر فرما حل شد ان شد انشاءالله اگه حل حل شد من برم توضیح ادامه تکبیل منظور اومد تر ایسا ات منظور تر ایسا این بود که وقتی که ما نگارم حسیشناسی به خود این سر قصیم هم نگی داشته باشیم با این ضرورت کفاق با خودکایی وقتی تر ایسا اون مثلا کجا اونجا که ما بین گشایش و کفایت و باقیم تظام در امور گشایش باستت کتاب دارت کسی بشایش رو اونجا کرد کار گشایش بفرمویم بشایش رو انجام بده کفا کنند خب این از بحثم خارجه خب, خب این این مثلا خیابانه بود دیگه توان بحثم اونه که به دو نظام برای در دو نظام تظام شکل و در نظام واردن پنجه هزار توان در تهران در این ازام واحد او شما با کشیدن این را مثلا با کشیدن این جاده مثلا میگم کشیدن می این جاده باز میشه که این باشایشه اما این باز بشی کفاقا حاصلی بشه چرا؟ چون مسیح نصب بشه. و آرازم احضرت تو که بعدم کرای کم تری بدن خب یعنی الان ب... تاثیرش تو بحث ترافیک چیه ببینید الان خیابانه بزرگتر شد خو خب یه به جای یه ماشین پنج تا ماشین میره خب تاثیرش تو بحث تز... تزارف تزاوم چیه یعنی به شما بگید تامین میشه خب بشه ما مشکل و تامین شدن اون سطح بالاتر که زه اون کفافه گوشه که تامین میشه ضرورش هم حاصله ولی ضروری تو خود اون برای اون خیابانه ما الان میخواییم اون پوله رو در یه عمر دیگه تو نظام اقتصادی الان مثال زدیم الان دو مصداق برای نظام اقتصادی بود این خیابان این شهر با اون شهر پایین شهر با بالای شهر دو مصداق شدن تو یه نظام حالا مثال بعدی میریم میگیم آقا ما اگر مثلا ازت یه مقوله سیاسی باشه ازت ملی مثلا فرض کنیم این سیاسی باشیم میخوایم ببینیم عزت رو به قدرت زیادی نداریم ده میلیون میخواییم خ... خرش کنیم آیا تامین عزت کنیم یا تامین رفع فخر کنیم یا خیابان کشی کنیم منطقی که روی الگوی ارائه روی میفرموان چیه میگه نگاه کن ببین چه در یک نظام چه در دو نظام یکیش از این نظام یکیش از اون نظام میگه ببین سطح کدامش بالاتره اگر یکیش در واقع مقد... اهداف مقدماتی خب اون سطح اهداف متوسط تو اون یکی نظام بالاتره تو دو تا اهداف مثلا متوسط هم نگاه کن ببین چیه اگر امور مثلا یکی ضروری، یکی ست و کفایت، یا موارد دیگه که من شیش تاش رو میکنم خب بعد یکی دوتا هم اون قسمت مساویاش مف... رو یه تکمله زدم پس حالا این رو انشالله باز اگر چیزه برام بیاد کنید اون نقطه چیز من این رو سعی بکنم تمام کنم این قسمت ایم. بعدش باز مذاکره کنیم پس در امور الان یعنی شش قسمتی که من کردم تضامم امور ضروری با یکدیگه گفتم این مورد نیاز داره که بررسی مستقل بشه اگه یکیش در واقع اگر یه موردش در واقع مقدم چیزی بود امور ضروری‌تر باید مقدم بشن خب خوب درسته اما در صورتی که یکیش ترجیح نداشته باشه اینجا به حکم تأخیر باید کرد تو بحث اگر امور ضروری با امور کفاف یه گشایش تضامن پیدا کنه البته اینا رو میشه دو قسم بکنیم در واقع تو منول منطقش یکیه امور ضروری بر اونا مقدم میشه اگر امور همصد، که کفاف باشن با یک دیگه تظاهن کنن این مورد هم مورد نیاز به بررسی مستقله به این معنی که دو شخص میشه اگر امور در واقع در واقع اموری که بگیم خلاصه اموری که کفایتش در واقع کفایت اونها بگیم بیشتره شبیه اون ضروری بگیریم کفایی تره کفاف در واقع بگیم کفافش بیشتره خلاصه درجه یه چیزی داشته باشه اموری که برفرض در واقع کفافا فرینی بیشتری داشته باشه خب اینجا باید مثلا اون رو مقدم کرد برفرض اگه مساوی داشته باشه باید اون مقدم بشه اگه مساوی باشه باید چیکار کرد اون فرض دومش میشه در صورتی که هم سطح باشن امور کفاف دیگه ترجیح نداشته بشیم حکم پخیر اگر تضامن بین امور کفاف با امور گشایش بشه اینم طبیعتا در واقع امور کفاف امور سطح کفاف مقدمند دیگه چرا؟ چون که از گشایش مهمتره درسته بر امور مربوط به سطح گشایش مقدم میشه اگر بگیم که شبیه اون بسید هم, هم سطح در گشایش باشه تضاهم امور گشایش با یکی باشه این هم باز بررسی شبیه اون قبلیه داره که بیونی ماهی میشه یکیشه مقدم کنیم این هم نیازمند همینه خب ولی اون قسمت گوشایش با قی... در واقع غیر ضروری ها با امور غیر ضروری البته این هم همش غیر ضروری بود با امور سطح پایین تر باشه یعنی پایین تر از گوشایش با موارد مثلا بگیم با امور اسراف بگیریم سطح اسراف خب طبیعتا این هم دیگه منطق شوشنه اون اصراف بالاتر از گوشایش حلاله در واقع گشایش حلال بود با سطح خلاصه گشایش حرام در واقع اون موارد دیگه گشایش حلال مقدم میشه خب حالا برگردیم این فرمانش آقای چیز که کشیدن از این منطق روشن شد اون فایل رو هم که خدمت شما داریم مثلا حالا تو ادالتشون اومدن همین گفتن گفتن آقا از با مثال عدالت اقتصادی ما این سه وقت داریم عدالت اقتصادی به معنای رعایت حقوق اقتصادی افراد در حوزه اقتصاد میگن داره مراتب مختلفی باشه یه مرتبش می توان از فقر مطلق نجات بده یه مرتبه از فقر نسبی یه مرتبه گشایش ایجاد می کنه اون ابحامی که آقای لنگری فرمودن منم به من تعیید کردم اینجا ایشان مبهم تلقیش نمی کنه یه جوری عدالت رو تو فضای اقتصادی در نظر می گیره یعنی شعبی قضا میگیره که بگیم موقع یا ظلم کردی یا حق اینو دادی یا ندادی. اینجا یه جوری رعایت عدالت رو نسبی میگیره، داره مراتب میگیره. میگن اینجا چیکار بکنیم؟ در این مراتب را میتوان در ارتباط با و امنیت اقتصادی هم در نظر گرفت. این 300 رو برای ادالت گفتن. عدالت رو میگن بخشی برای رفع فقر مطلق یا برای رف فقر نسبی، یه هم برای صدقه گوشایش رفوینه خب جدولی که کشیدن چیه یه جدولی تو اون دوستان ملاحظه کردن میگن آقا یه طرف بالای جدول مساله نظام رو لطیف کردن عدالت ضروری عدالت کفاف عدالت گشایش بعد امنیت ضروری امنیت کفاف امنیت گشایش و طبیعت جدول الا در فایل من کامل دیده نمیشه طبیعت ستونه عمودی رو ضروری کفاف کشایشی گرفتن دوباره ضروری کف حالا اگر نه این هم همینطور. بعد خب کداما مقدم میشه هر موردش که ضروریه طبیعتاً مقدم میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه میگن اون مثلا مسئحت فرد فرض کنیم یا ئلح جامعه کدام مقدمه؟ هر کدام که ضروریه بنابراین میگن اونجایی که مثلا مصلحت فرد فرض کنیم متفاوت با مصلحت جامعه اگر مصلحت فرد مثلا ضروری مصلحت نظام حالتا این یه بس دیگه شد ولی منطقش با همون منطق خدمت شما ارز کنم این مقدمه نگاه میکنن ببینن مثلا یه حالتا یه جدول دو همی شده مسائل فرد و نظام رو با هم مقایسه می کنن. ستون بالا مساله فرد ستون پایین مساله نظام مساله ضروری فرد کفاف فرد کشایشی فرد مسلحت ضروری نظام هم سرات بداره ضروری کفاف کشایش خب مسلحت کد اگر مسلحت فرد ضروری باشه مسلحت نظام هم ضروری باشه گفتن مسلحت نظام مقدمه اگر خب این نهیه مستقه خاص اگر که کلن مساله نظام رو در بر مساله ضروری فرد هم مقدم کردن بر ضروری کفاف و گوشایش رو کفاف معلومه ولی چون مساله نظام ضروری باشه خارج شد نیست که پس اگر مسلحت ن... کفاف نظام رو مقایسه کنیم فقط در جایی که مصلحت فرد ضروری باشه مقدمه بر مصلحت نظام ولی مصلحت کفاف و گشایش اگر مصلحت نظام کفاف باشه بر مصلحت کفاف و گشایش فرد مقدمه مصلحت نظام اگر گشایشی باشه فقط بسطعت گشایش نظام بر گشایش فرد مقدمه ولی ضروری و کفاف فرد مقدمه این یک جدول دومی بود که این باز نیاز به توضیح داره اما طبق اون بحث قبلی کومینو خب همش مسائل نظام بود مسائل نظام هر کدام که ضروریه بر کفاف ها مقدمه عدالت میگه که هر مثلا ادالت یه طرف ادالت یه طرف تضامن ادالت تضامن با امنیت این تضامن ادالت و امنیت خودش چند شق داره ادالت میگن که هر کدام اونجای که ادالت و امنیت دستت ضروری با هم تضامن پیدا کنه میگه هر کدام رفا رو بیشتر رو کنه اما اگر عدالت و امنیت، عدالت کفاف یا عدالت گشایشی و امنیت ضروری مقدر تضاون پیدا کنه اونی که ضروریه، امنیت ضروری و همینطور هر جایی که هم رتبن با هم تضاون می ایشان نمیره سراغ تخییر، میره سراغ رفاه بیشتر، تامین رفای بیشتر این مد نظر ان شاء الله توضیحات رو باز تکمیل می‌کنه الحمدلله رب